دیار علی، سلام و خوش اومدید به نشست دوازدهم دوره همیه نعنفذر آزاد دونا نشستی که حالا با پایین هایی که ما داشتیم توی این سال عملا از دوازده ماه یه جوره دوازده جلسه هم برگزار کردیم یه میانگه میتونیم بگیم هر ماه یه جلسه، هر چند تراکبش تو نیمه اول سال خیلی بیشتر بود و این جلسه یه جلسه ویژه‌ای هست از این جهت که برگزار شدنش قاعث زنده موندن دونا شد اگه این جلسه برگزار نمی شد, یعنی در این هفته پایانی سال 1400 اگه برگزار نمی شد دونا احتمالاً در واقع به یک نقطه ویژهی می رسید که فعلا از اون نقطه ویژه فاصله گرفته باید ببینیم که در ادامه چجوری میشه چهار چهار چجوری پیش میره ادامه در حال کاره ممنون از شما این جنبسته رو در خدمت الریزا فریدونی هستیم در برای نرمحصر آزاد کسب و کار در واقع ایده های شرکت های مختلف مدل های مختلفی که شرکت های مختلف در واقع طولید نرمحصر آزاد کار بستن برای تأمین مالی پروژهی که استفاده می کنن پروژهی که به بخش طولی نوعی در واقع مسئولیت توسعه و نگهداریش رو عهده دارن در مورد اونها یه وقتی میخوایم بشنویم که حتما توش ایده های جالبی خواهد بود و چه برس و بعدش هم گف یه و گفتی می‌تونیم داشته باشیم حالا خود ابتدای جلسه هستیم و منتظر هستیم که دوستان دیگری بیان میتونیم در این فاصله که صبر میکنیم میتونیم در مورد احیانا اگر اخباری از دنیای نرم افزار آزاد گوش به گوشمون خورده چیزی دیدیم چه خوب می‌تونیم با گفتگو اشتراک بذاریم من فکر میکنم الان ساعت هشت هفت دقیقه است هشت و نهایتاً 20 دقیقه ما میتونیم را شروع بکنیم از میکروفون دست شما همچون سلاخ کار بوجه من حالا قبل از اینکه بخوام بیام توی این جلسه یه ای می آماده کرده بودم از هفرهایی که میخوام بزنم و یه ارائه توچولوان زفت کردن فقط یه روی دیر شد برای همین نرسید که آپلود شد و اینها حالا برای خودت می فرستم مصطفی ارائه رو اگر دوست کشتی بعدا منتشه باشد کن این آ... مهمترین خبر حالا من خیلی در جبین اخبار جدید نیست برای هم به وسط که در اینکه درجیه که این چند وقتا داشتم پایان نامه با درس و اینها بوده خودم را اینکه مقدار ایزوله کرده بودم از اخبار، من از هر دونه خبری اما یه چیزی که من شنیدم و حالا تو فیلم اینو کردم نیست اما دوستان ماجلوش یه ذره صحبت بکنیم حالا تا دوستان دیگه هم برسند یا اگر هم نرسیدن دو نفری جلسه رو جلو میبریم آرمان بود اینکه انتشار یک مدل آزاد چطور اقتصاد آمریکا و چمکو یعنی تا یک هفته کل بورس امریکا قیمه از و همه داشتن تو سر خودشون بوده خیلی پدیده جالبی بود به من و نشون میده چقدر بوده همه آزاد میتونه قدرتمند باشه آره جالب بود اگه گفتی آروان من اول گفتم که چه رفت آروان چه رفتی داری؟ عبر آروان اومد تو زده عبر آروان کار کرده مدر آزاد من نه آروان آره آره جالب بود من، یه چیزه من امروز در واقع دیدم یکی از دانیال روی لینکتین عربات من دیدم کلا یه چند روزی من مثل درگیریا داشتم کلان خیلی چیزه چک نکردم توی داشتم ایمیل رو چک می کردم دیدم یه چیزی در لینکتین یکی به من اشاره کرده دختم اونجا و دیدم که دانیال در واقع یه مطلبی نوشته بود ظاهرا نسخه جدید نکس کلاود منتشر شده ظاهرا به میزنه خوبی. مرد خودم هنوز نکس کلاد خودم رو هنوز رو خواب هشت عقبم یکی یکی دو تا از افصول که داره رو تعاروز داره و من میترسیم که بروز کنم. ولی ظاهرا توی آخرین ای که نکس کلاد داده، حالا مشکل راست چپینش ظاهرا حل شده و این در واقع نقطه شروع این مسئله یه اتفاق خوبی بود که به نوعی دونا هم در واقع در ادامه همون کار شکل گرفت و اون این بود که ما سال 1400 یعنی تقریبا یک سال و 6 و یک سال و پیش اگه اشتباه نکنم مهماه ماه 42 شیپور شرکت شیپور میزبان یک رویدادی بود که توی اونجا قرار شد که حدود افراد جمع بشن به صورت حالا حکاتون پور مسابقه دقیقا سه تا تیم 5-6 نفری یک سری مشکلات نکس رو حل بکنن که همه تصمیم گرفتن که مشکل محصول دستویش حل بکنن خب هرچند اون خود اون جلسه در واقع در این موفقیت هایی که داشت منجر به در واقع ارسال یک در واقع پول ریکوست نشد به خود و پروژه اما در واقع نقطه شروعی بود که این کار ادامه پیدا بکنه تقریبا فکر می تابستون تا امسال بود که اولین تغییرات جدی روی نکسلاوت رفت نشد و زاهرانم بعدن هم در واقع اون کارها تکمیل شد و این اتفاق هم زاهران اتفاق خیلی خوبی هست که نکسلاوت دران در واقع راست به چپ رو هم به خوبی پشتیبانی می یعنی کاملا هم ظاهرش کاملا تو راست به چپ شدن دیگه هم چون که قبلا متد دستویش اصلاح شده بود حالا الان وقتی راست به چپ به خوبی نمایش میده مشکلات فاصله اینا نداره و اینه به اتفای خوبی بود که من امروز دیدم خیلی هم خیلی خبر خوبیه و خوشحالم که کاری که تقریبا دو سال پیش شروع شد بالاخره بعد از دو سال نتیجه داد و این یه چیزی با نشون میده که آهسته و پیوسته بودن مهمه یعنی طولی میکشه تا به بار بشینیم ولی دیده باید دیگه باید به وار بشینیم دیگه. بعد زور خودمون رو بزنیم که به بار بنیم. من از خدا شما رو تا درخواست تشکر میکنم چون در جریان هایی که با خود حالا بنیاد حالا بنیاد چه نمیشه رو شرکت نفس کلاود و ارگانیزیشنشون داشتی که این اتفاق میافتت. خب خود. من خودم در جریانش بودم. من شخصا خودم از شما تشکر می‌کنم خاطر وقتی که گذاشتی و پیجیبی هایی که کردی و خبر قشنگ رو خوبی بود. ممنونم امیدوارم از این بود نکس کلاود های بهتری داشته باشیم اتفاقا توی اون ویدیوهایی که من زفت کردم به نکس کلاود هم اشاره کردم یعنی نمون یک نمونه از یک کس بکارنه مفضاق آزادی حالا دلیل داشته که چرا نه ولی به نکس کلاود هم اشاره کردم چرا چون به باباش اشاره کردم در واقع به اون کلاود اشاره کردم که چه اون کلاود شکست خود و چرا صاحب نرس کلود اومد نرس کلود رو فورک در واقع یک فورک از شرکت خوده ای ساخت اون کلود رو فورک کرد و, و نرس کلود رو ساخت آه، آه، یه قبر جدیدی هم حالا از یکی از دوستای ایرانی خودمون من شنیدم حالا نمیدونم چقدر شما خودت در جریانش هستی حتی نمیدونم چقدر صلاح باشه گفتنش اینجا اون هم اینه که چیز حالا آقای حقیری محمد رزا حقیری چندتا مدل خوب داره ترین می کنه و این مدلها رو داره چیز میکنه منتشر میکنه و به نظرم این هم اتفاق جالبی میتونه باشه ما مدل فارسی خوب عملا نداریم بهترین مدلی که داریم دور که اونم خیلی چنگی به دل نمیزنه اما کاری که حقیبی در حالا انجامش هستونه که مدل آران رو دقیقاً داره برای فارسی حالا به فانتیون میکنه که باز هم برمی‌گردیم می‌کنه هم مفضوع آزاد مهمه یعنی اگر آران نبود این کار هم امکان پذیر نبود و اگر لاما نبود آران هم نبود چون آران از لاما مشتق شده از مدل لامای متا مشتق شده جالب شرکت فیسبوک یا همون متا که اسمش ریگرانی شد متا که خیلی هم مفروم ششمینیم خیلی چیزایی نمفذار آزاد خوبی تا الان داده بیرون یعنی مثلا مدل برت رو متا داده بیرون کرنسفورمیر یک قسمتش کار متا بوده مدل فست و رو متا داده بیرون مدل چیز مدل خدا یکی از مدل های ورد یادم دفته اون با متا داده بیبون که فارسی هم خیلی خوب جواب میداد کلا متا به طرز جالبی تو زمینه حداقل درقل زبان طبیعی مدل های کارهای خوبی داده بیبون و کارهای خوبی کرده یکی از چیزای جالبی که من راجع به همین دوست دارم بش اشاره کنم اینه که مدیر چیز و کاش مدل مدلامونو باز می کردیم همچن هنوز مدلشونو باز نشردم ولی خب این هم اتفاق جالبی بود آره دقیقا و خب دنیای هوش مصنوعی مسئولی یه سری پیچیدگی زیادی داره داره فقط اشاری کردی من فقط اگه اشتباه نکنم تنها مشکلی که آروان داره این هستی که داده هاش آزاد نیست با چیزش آزاد ظاهرن و تو این زمینه من فکر میکنم یه مقداری بنیاد, دان... بنیاد نرمحصار آزاد یه مقداری خیلی منفعلانه یعنی خیلی آره دیگه آره منفعلانه اون موضوع کلا داره برخورد میکنه و در نقطه مقابل اون مجموعه در واقع پیشکابون باز اومدن یه فراخانی دادن حتما در جنیش هستی که برای این تعریف در واقع دوش مسلوعی مثباز در واقع تلاش کردن یه نسخه اولش رو کردن چند ماه پیش و عملاً شما وقتی میخونیش یعنی اگه مثلا اون متن رو بذاریم جلوی کسی و بگیم اینو بخون و به نظر چی نوشته احتمال خیلی زیاد میگه بنیه اعصاب آزاد نوشته از این جهت که هر که داره داره تعریف داره میکنه عملاً ارجاعاتش در واقع به تعریف‌های تعریف اعصاب تعریف آزاد و اون 4 آزادی هست و تو اونجا سعی جنبه های مختلفی رو الان پوشش بده و حالا من گفتم شاید بد نباشه یه به این بکنیم که یه مقدار اون دوگانه ای که ساخته میشه بین آزاد و مطباز اون ما اگر دقیق مشخص نکنیم که در بایده صحبت اینطبابت میکنیم خیلی وقت در واقع ما رو به هاشیه میبره در حالی که دارم. الزامن تمام کسایی که توی فضایی اوفرسورت هستن ضد آزاد نیستن که که حتی ما رو توی حویده دیگه بیروز برگزار کنیم و نشد برای روز داده آزاد همه تعریف هایی که ما داریم از داده آزاد یا حتی محتوای آزاد یعنی حالا خب ما آزاد میگیم ولی خب تو اینگریس ایش اوپن میزنه اوپن کانتن یا اوپن دیتا همه اینا تعریف درواقع اون تعریف گربن کلوفت که برای اینها داریم همشون تو تعریف اوپنه این مثلا اوپننس رو به معنی درواقع آزادی میگیرن و دقیقا تعریفشون همون چهارتا آزادی نر حالا با یه تحقیمات مختصری که متناسب بشه با اون موضوع بحثشون اغردن گوزه آره حالا بخوام بازش بکنیم این باید خیلی بیشتر و بیشتر شاخو برگش بدیم یاد اصلا شاید نباشه که یه اشاره فقط به این بکنیم آره دنیای جالبی هستش و منم امیدوارم که آره, آره، چیزام بکنم بگیم که حقیری که اسم اغردی خیلی کار خوبی کردی من دوست می‌داشتم که حقیقتاً می‌تونست تو دونا احیانا برنامه‌ای داشته باشه حالا دونا هم نه تو برنامه‌های دیگه‌ای بر چیز بکنه که کمک بکنه که من مطمئنم که افراد بیشتری علاقه‌مند میشن که بیاین زمین فعالیت کنند ولی درحال امیدوارم که ارائه‌ای هم که شما امروز داری بتونه کمک بکنه که یه مقدار مسیر روشن‌تر بشه که در کسب و کارهایی که در شکل گرفتن و بخش مهمی از اونها رو پایه توسعه نرمزار آده و بعد پای آزادی هستش که در توسعه میدن احتمالا بتونه به ما ایده هایی بده گرقکه هایی تو ذهن ما بزنه که چه بسا از این وضعیتی که توش گرفتار شدیم یه مقه خواهرج بشیم غیر ازشارع دادن و حرف از ایده ها اینها زدن بتونیم پروژه های آزادی رو هم در یک حد معغلی بتونیم تامین مالی بکنیم و جلو بریم حال، من فکر میکنم که دیگه هشت و بیس دقیقه شد اگه صلاح میدونی ما بریم خود اصل اراعت بریم بریم من محفظ هستم فکر میکنم زمان خوبی هم هست الان دیگه من کافی هم مقدمه بستیم تقریبا یک رفت شد خب آره. برحمن رحیم آقا آره قشن کنمون گرم شد خب <تص> بسم الله الرحمن الرحیم من علی رضا فریدونی هستم توی این جلسه خیلی که، آه، بیشتر رو در دو بخش ما صحبت کنیم یکی مطالبی هست که من خواهم گفت که میخوام به تو برخواست اشاره کنم به سه مثال موفق و یک مثال ناموفق نه اسلاید ندارم من و یک مثال ناموفق از, از شرکت هایی که نموفق آزاد توسعه میدن یا میدادن البته لابلاش به شرکت های دیگه و مثال های دیگه هم خواهم پرداخت به دلایلی من اونها رو الان در این نمیارم که توضیح میدم چرا خب بخوام مثال موفق بجم ما ستا مثال معروف داریم که یکیشون خیلی کلاسیکه یکیشون اصلاً کلاسیک نیست و یه یکی دیگهشون نیمه کلاسیکه یعنی یه جورایی الان دیگه داره کم کم تبدیل به مسئله کلاسیک خب هنوز مقدری بهش ارجاع داده نمیشه که ما به عنوان یک مسئله کلاسیک بتونیم متوجهش کنیم مسئله کلاسیک روی که دیگه هرچی اسم چسبوکا بانه مفضوع آزاد میاره بسم الله و رحمان الوحیم آقامون رتت همه میگن رتت خب هر عجب دان منو بخید خیلی یا نمیدوننم به ت چرا؟ خب حالا تو این من توضیح خواهم داد چرا اما مثال قی ای به کلاس چیچه میخوام بگم موزیلاه که مثال خیلی عجیب هم هست حالا می بهش و مثال نیمه کلاسسی چیچه میخوام بگم مثال کنونی هست خب این سه تا مثال رو من ما مثال هم موفق میخوام بگم و مثال نموفقی اون یک نیم مثال که رفته یک مثالش اون کلاوده و اون نیم مثاله یک پروژهی بود که در شرکت بستو شد و متاسفانه به سرانجام نرسید و پروژه فعلا حالا در دقیقه خابیده به سر میبره به نام و شرکت بستو شرکت ایرانیه که یه موبایل کار میکنه من یه توضیح خیلی کوچیکی بدم دهانه این که اصلا من اومدم بخوام واجبه این موضوع صحبت کنم همین بود که ما در شرکت باتس ما داریم از نرم آزاد استفاده میکنیم یعنی داریم اندروید توسعه میدیم هم استفاده میکنیم و هم توسعه میدیم و از اون طرف یه سری دغدغه ها سرمایه‌گذاران داشتن و خودمون داریم نسبت به هم در آزاد و هم امکان توسعه به صورت آزاد خب که بهتره که وقتی داریم از من و آزاد استفاده می کنیم خودمون هم به هیست درگردونیم یعنی خودمون هم چیزی که توسعه می دیم و آزاد توسعه بدیم حالا در های نرمفضا و آزاد و علتی این که اصلا من این مکالمه ها صورت بگیبه و این اراره انجام بشه همینه که نرمفضا و آزاد با ما داریم استفاده می کنیم که شرکت و من دوست دارم که بتونم، بر شرکت دفاع کنم از این که آقا بیاییم نمفضا و آزادی باشیم یعنی به جایی که فقط استفاده کنیم خودمونم برگردیم بیایم تو چرخه فقط استفاده کننده از چرخه نباشیم خب برگردم به صحبت اصلی ارائه پس گفتم که سه مثال موفق مثال کنونیکال اه... موزیلا و ردحت و یک مثال ناموفق بلا خواهج از ایمان که اون کلاود و یک نیم چه مثال که سانا دستاپ باشه از رایت هت که یک مثال کلاسیک محسوب میشه شروع میکنن خب رایت هت فری پولیر میاره یعنی چطور پولیر آورد الان که برای هت رو آی بی هم خریده و یکی از دیشاخه های آی بی هم میشه زمانی که برای هت داشت پول درمی آورد و میشه گفت عملان موفق ترین شرکتا هم آزادی موجود در دنیاست و بود و حل کردن یک مسئله یک درد دار حالا تو از بیزینس میدن پین پویند از حل کردن یک پین پویند داشت پول در آورد اون پین پویند که اون نقطه درد کجا بود؟ اینجا بود که آقا یه سیستم عامل رو کامپایل کردن خیلی سخته و خیلی طول میکشه خب برای این کرد؟ من یه سیستم عامل آزاد رو توسعه میدم به نام حالا روی انترپرایز یا RHEL و میام نسخه کامپایل شده و آماده ین رو میفروشم نم اینکه که خب ممکنه این نفر دیگه هم بیاد مثلا کامپایل کنه بفروشه تمام که این اتفاق نیفتاد یا اصلا ممکنه بیاد کامپایل کنه و اون نشه کنه حتی نفوشه منتشر کنه همینجوری گفتیم مشاور کرد که مندوی با میکرد مندوی با که حالا اصلا اسمش هم عوض شده اگر اشتباه نکنم اگر پروژه هنوز زنده باشه البته یا کاری که فدورا میخونه فدورا همین الان همین کار رو میکنه سورس هایه وقتی تچو میجيبه و اونها توی حالا اون زیر خودش ترکیب میکنه و حالا اون و چیزهای خودش رو اون ماجولهای های خودش رو بهش اضافه میکنه و میده بیرون اما اما هست برای اینکه که دو شما مسئله نشه اومد گفت که آقا من پشتیبانی هم میکنم یعنی اگر تو داری از فیدورا استفاده میکنی از منجریور استفاده میکنی از خنتورس استفاده میکنی اگر به مشکلی خودی با سواغ همونایی که ازشون سیستامل رو گرفتی سواغ من رویت حت نیا درست سورس من ولی سواغ من نیا اما اگر از سورس من مستقیم استفاده کردی خب؟ یا داری از مستقیم پایی شده من استفاده میکنی خب؟ و حتی که من رو داری خ چی شد؟ پس یا داری از نسخه کامفری شده من استفاده می کنی داری از فرص من استفاده میکننی اما نکته مهم اینه حق به منم مندم یا میدی. خب من میم کمکت می کنمم مسئله رو حلی میکنم مشکلات رو حل میکنم ضمنین که برای اینکه فقط مشابه و نباشه یه سری خدمت اضافهتر هم بهت میدم خبا حالا جز خدمات آموزشی و خدمات استقرار و خدمات فنی میان مثلا بهت یه سری بسته های اضافه میدم. خب دانش ما مشتری رو هم کامپایل شده بهت میگم لازم ندیدی اونا رو هم کامپایل کنی ولی خب اگر چیز نباشه بعد از شروع کامپایل کنی دیگه حتی اشتراک معلوم نداشته باشه و خودت از شروع کامپایل کنی خب این مثال برای تجقیق مثال خیلی کلاسیکه رایتنت با تکیه بر فروش خدمات و نه فروش خود نرم داشت پول در می آورد خب یعنی شی ها به اینکه از خوده بت استفاده کنن از فلورا یا از لا سنتورس استفاده میکردن اما کسی که نیازمندی خواص داشت مثلا نیاز داشت حتماً حتما یک تییدیه امنیتی خاصی وجود داشته باشه یا مثلا شرکت بزرگی بود که پشتیوانی براش مهمه خوب میرفت پول ردهتم میداد خوب و به تت این شکلی داشت پول آورد اما مثال دومی که میخوام بزنم پس مثل عقلمون چی شد از فروش خدمات روی نرم افزار مثال دومی که میخوام بزنم موزیلا که این مثال به شدت قوی و کلاسیکه موزیلا شاید وجود باشه مهمتر این ننده دوامتش که برگزار میکنه یا ازشون حمایت میکنه موزیلا میت نذیه وجود حمایت میکنه یا یک وجود برگزار میکنه ولت خودش میگه مزارعه میکنه و یه سری پول دریافت میکنه حالا میگه چیکار میکنه میاد این پولا رو یک قسمتش رو خودش برمیداره میگه یا این قسمتش فرانشیزه منه بانوان فرانشیز منی که اسم و راسم من دارم منی که موزیه ها هستم بانوان فرانشیز دارم دام تذریق میکنم به پروژه های خودم و چون یک فاندیشن هست چون یک بنیاد هست بنیاد تو امریکا آ... نمیتونه چیز فرام نمیتونه بیزینس باشه یعنی نمیتونه خرج ات اینا کنه باید شفافیت مالی داشته باشه خب آه... کاملا شفاف هست که این فرانش شیشه چطور می دید رو پروژه و خرجش چی میکنه که ما معمولا موزیلا موزولا میشه بعد موزیلا دو تا کار با نماش دیگه هم میکنه کلمه با اولی که انجام میده اینه که یه سری خدمات خود موزیلا رو میدن مثلا ما موزیلا پاکت رو داریم که شما میتونید حالا طری چنگ میشه واگانه از یجی بدشو باد بخرید میجا آقا اگر میخای خدمات من استفاده کنیم بیا یه پولی بده مثلا بخر یا میتونی بیای عضو بنیاد موزیلاشی یا حق اشتواشی پرداخت کنی و از خدمات آنلاینی که من بنیاد موزیلا دارم ارائه میدم با یه پشتیبانی ویژه‌ای استفاده کنی مثلا از خدمات سور آیارشی من استفاده کنی سلام آمیزیشون حالا به صورت عمومی در دسترس هست اما سلام آمیزیشون خب داخلیه یا جیت لبشون داخلیه میگه از اینا میتونیم بیای استفاده کنیم مشابه کاری که موناد در مفصل آزاد هم انجام میده و سرووم که مزیره ازش پول میاره که بنیادهای دیگه هم از این طریق پول در یکی از امریکا میاد به مستری همین کمک‌های مالی که چند وقت پیش شنیدیم که قطع شدند خیلی‌هاشون یک قسمتش به بنیادهایی داده می‌شده، بنیادهای ناسود. که اینها کارهای آمولمنچه‌ای انجام میدن مثل مثلا موزیلا، مثل ای اف اف، مثل تو پروژکت، اینها عدیف‌گوجا داشتن مستقیم حالا من الان در جریان نیستم آیا اون عدیف‌گوجاشون رد شده یا نشده، اما اینها عدیف‌گوجا داشتن و مستقیم از دولت، از طرف دولت حمایت می‌شدن بابت کاری که داشتن انجام می‌دادن، و بالا انجام می‌دادن. این شکلی موزیلا پول به خودش رو تعمین میکنه پس موزیلا داره از چه طریق پول تأمین میکنه از طریق حمایت های مستقیم موقعی و مستقیم ولی حمایت فعال نه حمایت عقیی و فعال دنی یعنی ما اینین ستاده من مندونشان بدی خب خودش فعالانه داره میجا داره میرم مثلا برای یه یه یهکروی یه چیزی پول و یه رو چیز می داره یا میاد مثلا موزیلا پN ااره میده یه پولی از روش ولی اینو شفاف انجام میده به صورتی که حالا غریفه دونیشن میخوره بل به حال اخته اینم رویش خوبیه و روشیه که ما مثلا توی بنیاد بلندر میبینیم توی بنیاد اینکستریت میبینیم تو خیلی دیگه نش فاندیشن هستن میبینیم این رابش ها رو اما روش کانونی کال از همهشون به نظرم جالب‌تره و از همه هم تره یعنی ما تو فضای چاسکوتا و نرم افزار آزاد بیشتر از همه روش کانونی کال رو میبینیم اما چی چیکار میکنه؟ Canonical خوبی که انجام میده اینه که میاد نرم آزاد توسعه میده. خب اما نه به صورت مستقیم. میاد از اوبونتو حمایت میکنه، از توسعه دهندههای اوبونتو حمایت میکنه، پول میده به توسعه دهنده های اوبونتو که اونها اون بدن، اما خودش در سیاست رو نمیده. این خیلی نکته مهمیه سر مثال نموفقی که داریم یعنی اون کلاوت به این مسئله من بر می دوباره خودش دخالت نمی‌کنه در سیاست گذاری اونتو یعنی اصلا سیاستی که داره اینه اگر عضو کنون میکال هستی حق نداری عضو برده اونتو باشید و اجب باشی. عضو برده اونتو هستی حق نداری عضو کنون میکال باشید خب حالا که اونتو می کنی میاد, میاد توسه پیدا کنه اما از اما از کجا درآمد به دست میاره از فروش خدمات روی اون نرمفضار و آزاد درخش با رتت چیه؟ گفتیم رتت هم همچین کاری میکرد روی نرمفضار و آزاد میفروخت ردت مستقیما خود نرمفضارش رو میفروخت به عنوان خدمات اما کاری که کار انجام میده اینه مثلا میاد اوبونتو وان رو میفروشه خدمات پشتیبانی اوبونتو مثلا میاد uh, Ubuntu اوپن تک میفروشه، Ubuntu وی سیفت میفروشه، Ubuntu Cloud میفروشه. میاد خدمات این شکلی میفروشه. یعنی Ubuntu رو میذاره مبنا، خب؟ بعد میاد مبتنی بر اوبونتو کلاود گونده میसाزه. میگه آقا بیاید خدمات امنیتی میخوای، بیا بیا از من بخرب. مثلا خدمات کوبرنتیس میخوای بیا از من بخرب. خدمات مثلا دیتا سنتر میخوای بیا از من بخرب. خب؟ من بیستم ولی او بونچوه. همون بونچویی که همه میشنند، همون بونچویی که همه باشند، من کار میکنن همون بونچویی که اینقدر محبوبه فلان فلان فلان فلان. در واقع دارم تبادل بونچو استفاده میکنه و مبتنی به بونچو تمات میفروشه اوم. این مدل یک خیلی توار شده. یعنی من مشابه این مدل رو در مثلا زن هم میبینم. شرکت زن، گروه زن، اتی شرکت نیست، گروه بیشتر. و, و این هم از همین طریق درآمد داره الان کاری که انجام داده اینه که اومده زن رو برداشته زن سرور رو که یک نرم افزار آزاد دوال لایسنس هست رو برداشته وقتی میگیم دوال لایسنس یعنی چی یعنی یک نسخه آزاد داره یک نسخه غیر آزاد تجاری داره خب حالا واجبه زن اون نسخه غیر آزاد تجاری سورس کدش کرده است و شما اجازه دارید از اون سورس خود. استفاده کنید وش روش بدید آزاد نیست ولی آزاده حالا یه چیزی که آزاد هست نیست از این قسمت داستان عبور کنیم زنورکسترا میاد کود زن سرور رو برمیداره اون کود رو کامپایی میکنه آماده میکنه یه چیزی تا اینجا شبیه ردحته این رو میده به صورت رایدان را به نام اینجا شبیه کنونیکال. خب حالا میاد میگه آقا تو مگه از اکسی پی اینجی داری استفاده میکنی یا از زن سرور داری استفاده میکنی مثلا خدمات live migration بین زن سرور ها رو میخوایی یعنی چی؟ یعنی من یه زن سرور دارم توی یه زن سرور دیگه دارم دیگه الان میخوام زن سرور اول رو خاموش کنم دیگه مفجرت کنم بود دومی خب یا مثلا من یه پروکس مورس دارم یه سرور یه زن سرور دارم یه جایی دیگه میخوام مهاجبت کنم به زن سرور میگو آقا من یه سری نرم نرمخصوی یه سری عبضا یه سری خدمات بهت ارائه میدم تو تو بتونی مثلا این مهاجبتت رو راحت تر انجام بدی به اینها را بهت میفروشم مثلا پنل رب میخوای بهت میفروشم خب میادی اینجوری حضینه های خودش رو ترمیم میکنه ترچیم یه از ردحت و کنونیکال انگاری خب ولی خب پایش اون کار یه تنانی کار داره انجام میده یعنی اومده یه در مفتار آزاد را باشته و داره روش توسعه میده و داره در مبنوی اون توسعه ای که میده خدمت ارائه میده و حالا اون قدمات رو میفروشه به جایی که خود نرمفتار را بفروشه خب، تا مثال مرفق را با هم دیدیم اما ببین ببینیم مثال نامنفقمون یعنی OnCloud داستانش چی بوده اون کلاود خب یه جوایی بابای نکس cloud محسوب میشه نکس کلاود رو استعمالا باش آشنایی داریم خدمات عدوی یکی شما میتونید باید سرور خودتون دریافت کنید و دانلود کنید دریافت کنید دیارید بالا و استفاده کنید و داشته باشیدش اما کسی که اون کلاود رو راه کرده همون کسی که نکس رو اندازی کرده خب؟ چرا کسی کنه اون کلاب در واحددازی میکنه میاد و نفس کلاب در واحددازی میکنه این رو در یک اراعه مفصلی خود این بنده خدا که دراره شده با why i forked my own company میاد ارائه میده و توضیح میده اینجا که چی شد که من اومدم کمپانی خودم رو فورک کردم اونجا به یک مسئله مهم اشاره میکنه میگه لت اینجا اون کل چست خود تا منافع بود تا منافع بین بینه چی و چی؟ خدمتی که من داشتم ارائه میدادم با نه هم افزار آاد. اون کل چیکار می اون کللب میومد در افزار آزاد ارائه میداد در اف آزاد و توسعه میداد خودش یعنی اون کل رو خودش توصعه میداد بعد حالا میومد خودش سربر اون کللا هم ارائه میداد اینجا همون یعنی توسعه دهنده و اراده خدمات شدی یه نفر این همونجا اینکه کنونیکال انجام نداده کنونیکال اومده اینجا اول توسعه دهنده اوبونچویی نمیتونید دیده تو کَنونیکال باشی علی تو کنونیکالی اجازه ندی جزره بورد اومد مشالون گولان میدم جزره توسعه دهنده ها نیستن ها بر که ندارم یعنی تصمیم جوان اوبونچو تصمیم تصمیم تصمیمی چی چه تو اوبونچو باشه چه تو اوبونچو نباشه خب اما اون کلاود اینجوی نبود. اون همون کسی که تصمیم میداد، چی تو اون باشه چی نباشه همون کسی بود که داشت خدمات روی اون کلاود میداد و این گاز میشه که چه اتفاقی بیفته؟ خب سرمایه گذار پول سرمایه گذاشته، سرمایه گوزار که سودش رو میخواد. این که شما داریم مثلا یک کار خوب انجام میدی، واسه واقعا مهم نیست. خب پس چه اتفاقی میفته؟ میات فشار میاره به شما که داری خدمت ارائه میدی اینجا آقا قسمت آزادش رو کمتر کن چرا چون یه اینو داره که مثل بیت هت که گفتم فدورا وجود داشت فدورا وجود داره مند ریوا وجود داره حالا قبل واکشی بود یالا سنت اوست سنت وجود وجود داشت خب همون طور که اینها وجود داشتن و عملاً کسی نمی اود خود به حتی خالی خالی بخره مدم پشتیبانی رو میخواست خب اینجا ممکن بود هوان این اتفاق میفته چون اون تجربه هی وجود داشت و که این اتفاق نیفته هی ه هی از قسمت آزاد اون کهلب چ می و به قسمت نازادش اضافه می و این اتفاق خوبی نبود این اتفاق جالبی نبود اتفاق جذابی نبود خب این میشه که خود کسی که اون کلود رو شروع میکنه به خاطر اینکه دغدغه اینه که مسابقه آزاد داشتیم یا نکست کلود رو راه میندازات حالا نکست کلود چیکار میکنه نکست کلود کامچا انجام میده اینه میاد میگه آقا من فقط نکست کلود رو توسعه میدم و خدمات فنی رو میدم یعنی شو یعنی شما میخوای نکست کلود ولا بیاین خودت بلد نیستی من واسط بلام میارم شما نکست کلود به یه پلاگین خاصی میخوای پلاگین موجود نیستم واسط توسعه میدم خب یا اگر هم افضای میداری میخوایی من نیت سلاود کنی خودت نمیتونی پول بده من واسه انجام میدم خب یا مثلا یه ویژه خاصیتون می خواستی میخوای من اون ویژه دی رو برات اضافه میکنم خب میاد و این کارها رو انجام میده میاد و از این کاری پول در میاره و خودش جده نیت ارائه نمی, نمی کنه اینجوری تونسته اون تضاد منافع رو برطرف کنه اما آه... آه... آه... آه... انتلاب که كره... رکشیم پس انتلاب چرای شد تسبب به بخاطر... خاطر تضاد به منافع بین اونجایی که نقطه ارزش کار بود با اون جایی که نرم آزاد بود یعنی باید باشه اگر داریم تسببکار نرم افضاوه آزادی باید میندازیم این تضاد منافعه به وجود نیاد چون اگر به وجود بیاد نرم آزاد قربانی خواهد شد احتمال خیلی زیاد و مثالی که زدم به عنوان مثال نامعفق داخلی یعنی ساندستاب اون رو میخوام باز کنم ساناد پروژه ای بود که خیلی پروژه خوبی بود یه از بهترین تجربه هایی بود که در ایران اتفاق افتاده من واقعا این رو هر کسی از این میپرسه این من میدم همیشه و ما دو تا قاعده توی اون پروژه داشتیم که حالا که اون پروژه دوستان خوبی مشاوره کردن دانیال به افزادی چه اسمش اومد بود محمد رضا حریبی چه اسمش اومد بود و احمد حریبی بود و پروژه بسیار پروژه خوبی بود اما شکست خورد. آه از چه جهت می‌دم پروژه خوبی بود و از چه جهت می‌دم شکست خورد. از این جهت می‌دم پروژه خوبی بود چون ما دوتا قادة بود توی این پروژه رعایت را کردیم. قادة اولمون این بود که ما در اساس مدل توسعه بالادستی اپ‌استریم development شروع کردیم توسعه دادن یعنی اگر محمد رضا حریبی نسخه کلمنتاین رو ترجمه کرد این کار رو در خود خود اصلی نسخه کلمنتاین انجام داد اگر مثلا من مشاورکتی توی ارتیلی انجام دادم که البته مشاورت فنی نبود مشاورت چیزی بوده داکیومنتیشنی بوده این مشارکت من به صورت در خود پروژه افلی بوده ما اینو فورک نکردیم خب این اتفاق خوبی رو افتاد این بود که خودمون ما منحصر کردیم به نهم افضاوا آزاد و رفتیم آقا ما فقط نهم افضاوا آزاد انجام میدیم و فقط کار نهم افضاوا آزاد انجام میدیم به نوع اینشون دادیم میسود کار نهم افضاوا آزاد کرد اگر کسی بخواد میتونه اما ما از به بیزینسی شکست کردیم ولی چرا؟ جالبه بدونیم که ما تمام بسکرک هایی که من تمام اون تجربیات مهم و خوبی که من قلعان گفتم ما کردیم یعنی حواسمون بود که ما اینکه داریم سونا دسکتاپ با تو مستقیم خود محصولمون نشه نقطه ارزش اصلی بلکه ما بشیم پشتیبانش حواسمون بود که ما باید خدمات بفروشیم نه خود نرم افزار رو حواسمون بود که باید ترسی بالادستی انجام بدیم نه باید پیشیده جیرکاب رو برای خودمون زیاد کنیم تا بعد نتونیم هندلش کنیم حواسمون به همه اینها بود چیزی که مانع ما شد قانونی به علاوه قوانین عجیب و غریب بود یعنی ما مثلا وقتیم پیش چیز پیش یه کافهما که بیا ما یک عامل سازمانی مشکل داریم خب برام از کناده دستاپ بیا دیستاپ تو رو به این سیستعامل مجهز کنیم هم امنه هم سریعتره هم نیازهایی تو تو داریم و نیازهایی که کارمندان تو دارند رو برآورده میکنه ما وقتیم نیاز سنجی کردیم از من خودم اداره خود من انجام دادم این کار و از تا اداره دولتی رفتم و از کارمندانش پرسیدم که مثلا شما در روز از چه نرم افزارهایی استفاده میکنید چه استفاده هایی میکنید و فایده تحقیق توسعه ای خوبی انجام شد خب اما کلا فراموش چیزی به ما برگرده بگه خوبه داخلش بمون گفت که آیا شما تایری امنیتی استفاده میکنید ما مونمیم. گفتیم که آقای من تا همین الان ویندوز استفاده میکنیم و امنیتی داره و جوابش که به ما دادن این بود که خب این جوزه از قبل بوده اون موقع بحث به قیدی امنیتی نبوده الان ما بخواییم تغییر بدیم قیدی امنیتی و خب. ما عملا به چالش رو به چیز خوردیم به, به, به دستانداز خوردیم شاید اشتباهی که کردیم خب. و اون علت اصلی اون دلیل ریشه ای که باعثش رو تستانا شد این بود که اومدیم مخاطب رو خیلی محدود کردیم در نرمه آزاد تجربه نشون داده وقتی شما مخاطب با مخبود میکنید باید نیازبندی شیلی خاص باشه ما به این موقت توجه نکرده بودیم و این باعث شد که ما شکست بخوریم ما بعد این وقتی سیست سازمانی میدیم در حالی که واقعا لازم نبود یعنی ما اگر ساناق رو به صورتی سیست آمال عمومی میدادیم شاید معفقتر میبودیم نمیدونم این یک تجربه بود که حالا من داشتم و خب من چیزهایی میخواستم می‌خواستم بگم مثال‌هایی که میخواستم بگم و گفتم چه ساعته می‌خواستم و گفتم و نوبتش هم میخواستم با مطرح کردم یک مورد باقی موند اون هم اتفاقی بود که اون هم این بود که آقا اصلاً چرا با مهمه این مسئله؟ خب این همه داریم می‌گیم آقا مثالهای موفق مثالهای ناموفق در افسر آزاد کسب وکتا در افسر آزاد چرا مهمه من این روایت توضیح خیلی توهآه میدم چون ابتدای جلسه هم بهش پرداختیم دیگه خیلی مفصل نمیجمیش. یک اتفاقی همین چند ماه پیش افتاد همین یک دو ماه پیش افتاد شرکت دیپسیچ که شرکت چینی بود یک مدل هوش مصنوعی با نام آرران رو منتشر کرد با یک معماری آزاد با استفاده از معمارسال‌های آزاد و به صورت آزاد یعنی حالا مدل که حالا به اصطلاح اوپن وییت مدل هست خود مدل اوپن مدل هست چون ماریش مبنای علام... لاما هست و اوپنه روی علاما این رو منتشر کرد روی ترانسفرومرز هاگین فیس که یک بستر آ... ن... توصیعه یا نرم آزادیه یعنی خودش نرم آزاده و عملا فقط داده هاش آزادی نیست خب؟ و این مدل به واسطه این منابع خیلی کمی مصرف می کرد برای یادگیری و برای استفاده به نسبت مودله های مشابهه البته در به این مدل‌های مودله های مشابه موجود رو با اختلاف پشت گذاشت باز شد که یک هفته بوس امریکا قرمز بود یعنی یک چینی یک کاری میکنه بوس امریکا قرمز میشه چیسی باید میشه چنین اتفاق بیفته نرم و... به ذنب من نرم آزاد بودنش بارست میشه یعنی اگر از نرم آزاد نبود مطمئن باشی اون کارگزاران مهم... اص... اص... اصلی و بازیگمان اصلی بورس حالا مثلا امریکا یا اقتصاد امریکا راحتی می که میگفتن که آره اینا بلوخ زدن اینا اینقدر مدلشون مثلا خوب نیست اینا مثلا اینقدر فلان نیستن اینا این مثلا مدلشون حالا سریعی نیست این نده مثلا مدلشون خوب کار نمیکنه یا مثلا هر مولوف دیجی ای اینا اینا نه اومدن خودشون مدل توسعه بدن اومدن مدلهای دیگه رو ترکیب کردن ولی وقتی مثلا ما در آزاد داریم آزاد خودش به زوم است خودش گهن باز می کنه. خودش حرف میزنه خب خودش خودش را اثبات میکنه آقا من مدل آران توسعه دادم مدل من فلان بیاید اینم خود مدل می طلبم کسی حرف بزنه الان برسد نوشم مشقایم میشه خوب این نرم افزار آزاد و کسب و کار در نرم آزاد مهمه چون ما باید بتونیم وقتی نرم آزاد یه چیزیه که اینجوری میتونه دنیا رو تکون بده خب وقتی این پر استفاده ترین نرم دنیاست ما الان گوشی های انگیویدی که ما دبیم استفاده می کنیم حقیلی نوکس هست خب؟ خیلی نوکس پر استفاده ترین نرم دنیاست چه یک نرم آزاده؟ پس مهمه که ما بتونیم کس بکنیم نرم افضاد آزاد داشته باشیم من خیلی دوست دارم مکالمه در ادامه به این سمت باشه که آقا خلقهای قانونی رو به نظرتون چکار می بکنیم حالا لطفا من از خود مصطفی خواهش میکنم که یک مقدار دانشش رو به به اشتراک بذاره چون می دونم در این زمینه مطالعاتی داشته و خوشحال میشم که بریم دیگه به سمت این چه که قبلا گفت داشته باشیم من صحبت هم سان ایمیام عادی دست درد نکنه دوستانی که تخصص دارن اگر سوالی دارن، نکسی دارن، خوشحال میشیم که بشنویم یا بخونیم از اونجای که میبینم که مکروفانشون روشن نیست یعنی میسید خوشن از سوال نکردن اگر تنبال داشتن میشود تا قسمت گفتگوی عمونی میتونن اونجا نقاطشون رو بنویسن و با ما به اشتراک بگذارن والا، والا سوالی کرده یه وقت گسترد و من الان یکی یه بخشش رو یه جواب کلی فقط بدم فکر مهدی مهدید تلاش میکنه که با میکروفون بیاد و چه بسا دسته رو, رو بتونیم بشنبیم من یه صبر بکنم من هر دست می چه مسئله بیشتر چیز باشه بیشتر قصاب اصلی این باشه آها آها باشه من پس ادامه میدم مگه دوستان علاقه من بودن که میتونن یه علامت دست هم هستش توی بیک بول باطنی اونو بزنن دو دستشونو بالا بیارن ما بدونیم که کسی از دوستان میخواست صحبت بکنه در موانه قانونی والا من از همون اوایلی که وارد فضای در مبصر آزاد شدم یه چیزی که یه پاسخ معمولی که از آدم‌های مختلف میشنیدم در نسبت با اینکه چرا نرم افصل آزاد تولید نمی‌کنیم این بود که خب ما تو ایران قانون کپی نداریم و ما اگه آوازت منتشر کنیم دیگران من می‌تونن بیان از این سوی استفاده بکنن و در واقع کار بشه و دقیقاً آره. و این گزاره رو ما از کسای دیگه هم میشنویم من توی رویدادی که چند ماه پیش در واقع س... چی بود اسمش هفته کتاب تهران دومین در دو هفته کتاب تهران بود کتاب نه هفته تایپ تهران که در واقع یک رویدادی بود کسی که فونت طراحی می‌کنه در حالی شده به پی ارائه داشتیم و یه نمایش به از طراحی هاشون بود و خلاصه یک مسابقه بود و جوایزی داده شده و خلاصه اساتید این زمینه اساتید دانشگاهی این زمینه تو اینجا صحبت می‌کردن تو پرانتز سوال خوبی که خود رو بپرسیم که توی رو دور هنر آزاد ما چند تا استاد دانشگاه زمینه نرم افزار یعنی زمینه مرتبط و نرم آزاد تا حالا اون صحبت کردن خواهد توی اون رویداد یه همین رویدادی بود و توی اونجا هم بازم همین مسئله مطرح شد و یکی از افراد اونجا توضیح است و توضیح من جای دیگه هم توی زمینه تو زمینهای دیگه تو زمین اطلاسی هم متوقعا من توی بودن و اون هست که نه همچین مسئله نیست ما که قابل کپی کفیگای داریم و کاملا هم کار میکنه فقط مسئله این هستش که ما ازش استفاده نمی کنیم و بنابراین ما یک سنت قضایی براش در واقع ایجاد نکردیم چون اجازه خودش بیشتر از من میشه توضیح بده تو خیلی از سیستم‌های قضایی از جمله تو نظام قضایی ایران اون وحدت رویه یک جایگاه مهم می داره به این معنی که اگر مثلا من یک پرونده روزا یک دادخواستی رو بفرستم شکایتی بکنم پرونده باز میشه و قاضی که داره بررسی می‌کنه متوجه بشه که پرونده مشابهی مثلا دو سال گذشته پنی سال گذشته موضوع مشابهی با پیچیدگی های مشابه وجود داشته و قاضی دیگری توی اون پرونده با یک استدلالی یک حکمی رو صادر کرده این قاضی اگر استدلال بهتری نتونه بیاره عملا همون حکم رو تکرار بکنه به نوعی تکرار و یکی ضبیعه شده که شده از کشمارهای البته به این میگن وحدت رویه یه قضایی یا عطفه به ما سبق که در سیستم حقوقی ایوان متاسفانه ما اینو نرونید. یعنی هم قاضی مغذفه که خودش به حکوم برسه. حالا من چیزی که یکی دو تا طور دیدم که ارجاع به چیزهای قبلی میدن. حالا حال من حالا نقل کردم از یک کسی که اون جلسه بود که در واقع میگون ما این اتفاق نمیافتی یعنی ما الان هیچ پرونده ای رو نداریم که یک نفری در فضای مثلا طراحی فونت رفته باشه و کرده باشه یا آقا کسی اوناده طرح رو دزدیده یا چیکار کرد اینها چیزی وجود نداره که ما بگیم یعنی هر کسی که ما کپی رایت نداریم سایه حرفی داره میزنیم کسی نبوده که رفته باشه پیگیری کرده باشه و نتیجه نرسیده باشه و فاز فضل فاز نرم افزار آزاد هم ما اینو داریم و من موارد متعدد رو می‌شناسم در فاز عکاسی کسانی Uh, یه مورد به خصوص رو که یادم میاد آرش آشورینیا که یکی دو سال پیشم توی حادثه uh, متاسفانه فوت کرد و عکاس خلاق و جالب کار جالب یه منجام میداد و خیلی از پرچای هنرمندان بزرگ مواثر ما رو ایش نقراضی کرده uh, توی یه موردی یکی روزنامه اگر اشتباه نکنم همشهری راستان uh, برای فکر کنم هم پیش 15 تا ده 15 اصال پیش باشه اومده بود از عکس اول استفاده کرد بدونی که به نام عکاس اشاره بکنه و شکایت کرد و را به راحتی در واقع محکومیت گرفت. چون بحثش این بود که آقا هدف من این نیست که به من قلاوت بده، هدف من این که در واقع رعایت بشه حقوق مؤلف. در هر حال ما داریم قوانین متعددی داریم توی ایران که خیلی از موارد رو کوشش داده و اتفاقا قوانین بدی هم نیستند. ولی حالا از ب اون طول طور بخوام وارد مسالهش بشه. ما اینها رو چون چیز نکردیم ما هیچ‌وقت اینا رو جدی نگرفتیم حتی اصلا از طواریخ اطلاع نداریم هیچ‌وقت زاشه بودی که بریم پیگیری بکنیم که واقع ما کجوری میتونیم در نظام قضایی از یک نوع مفصل آزادی که منتشر کردیم در واقع بنوای محافظت از این جهات کنیم که اگه مثلا همان... آره یعنی یک حمایت قانونی پشتش بیاریم که اگر من مثلا یک نرم افضایی رو تحت جی پیل مثلا یک پروانی کوپیلفت منتشر کردم کسی نطوره به همین راحتی کوپیلفتش رو نادیده بگیره و کار خودش رو بکنه اینه ما کسی تا حالا این کار رو نکرده اینگه همچین پیگیریو تا حالا انجام نداده یه بخش مهم میشه با خود نیست که کسی تا حولیده کرده که بخواد یعنی یک پروژه خیلی کوچیکه کسی کار به اونجاها ممکن راستش که همگی با هم دیگه دستی در چنین کارهایی داریم که ترجیح میدیم که حالا شفاط نکنیم که اصلا کسی منو شفاط نکنه نمیدونم خیلی هم ماجره است ولی توی دنیا یه کوچیکی بکنم مثلا یه چیزی از امیدوار شما اینو صحبت نکرده باشی چون که مگه کی واسطه ایران نفت اصلا گوش بکنه اینا چه پروانه‌ای هستش که قبلا اشاره کرده بودی که ممکن بشه صحبت کنی اس اس ال و ها اس اس پی و بی اس ال آره اینا پروانه‌ای که به نوعی فلسفه وجودیشون دقیقا تلاشی هستند برای اینکه بشود پروانه های انتشار افزار آزادی داشت که در این حالی که کمک میکنن که ما نرم افزارمون آزاد باشه با این حال بتونن کمک بکنن که منافعی از اون تیم توسعه دهنده پروژه به تو تأمین بشه که اون منافع بتونه کمک بکنه که پروژه توصیحش اعداد بیده حالا من وارد خیلی توضیحات پروانه های مختلف نمیشم فقط یه اشارهی به SSPL میکنم و BSL SSPL که مخفف Service سایت Public License هست پروانه هستش که اگر اشتباه نکنم MongoDB میاد معرفیش میکنه شاید 3 سال 4 سال پیش و ایدهش در واقع این هست در واقع همون پروانه AGPL رو داره که یه تردیلاتی تو بند سیزده ای, ای جی تو مهم تین شد بیشه گفت ما به بند این پروانه هست دادن و اون این هست که اگر یک افزاری تحت SSPL منتشر شده و شما این افزار رو در پروژه استفاده می کنید کل زنجیره‌ای که باعث میشه که اون افزار رو شما بتونید اه، اه، کاربرتون برسونید که می تونه در واقع اون نرم افزار روی شبکه باشه که اساس اصلا این پروانه بر همین اساس در سیفرسایت خدمات برخطی که داره ارائه میشه کل اون زنجیره‌ای که باعث میشه که این نرم افزار عمل کردش به دست کاربر برسته نه تنها باید آزاد باشه بلکه تحت SSTL منتشر بشه خب انتقادات زیاد رو مطرح نخب علیهش در واقع شکل گرفت و از همون افساد هم یه چیز مشخصی داشت که حقیقتا پیشگمن مطباز اوپن سورس اینیشیتیو قطعاً اینو رد میکنه چون که به طرز آشکاری یکی از بندهای دهوانی تعریف نرم افزارهای مطباز رو که توش داره اشاره میکنه که این نباید محدودیتی برای سایر نرم ایجاد بکنه رو داره نفی داره میکنه شده. باید میگه که این رو بخواد استفاده بکنه بقیه نرم هم باید اس اس بشن و خب این به لحظه فنی بعضی نرم افسرات شما نمیتونید سازگار نیستن که بتونی بیای بیایی رو تحتیم بده بکنی ایسا تیار از طرح بنید نرم افسرات در این مورد اظهار نظری نکرده هرچند من هیچی با تعریف با خود اصل تعلیف نرم افسرات توش نیده برحال انتقادات تو مورد این پروانه از این جهت هستش که این پروانه آمدانه انقدر سخت گیرانه هست یعنی انگار نو دقیقا عملا اومده یه پروانه ای رو درست کردن که کسی که بخواد ازش از نرمستارشون استفاده تجاری بکنه عملا نتونه استفاده. مجبور بشه که بره پروانه تجاری ازشون تجاری بکنه اصلا حتی, حتی استفاده تجاری هم نشونه استفاده غیر تجاری هم بکنی عملا باز مجبوری که در واقع SSPL انجامش بدی SSPL منتشر بکنی کل فر... زنجیر رو و همین این یا خود نشدنیه ولی کار قشنگتری که به نظر من و خیلی عملگرایان که صورت گرفت پروانه یه از کسی بی سورس لایسنس اگه اشتباه نکنم و این پروانه یه جالبی داره. علیز اگه فکر میکنی من از بحث دور میشم به یه تذکری بده؟ نه نه نه استفقا اینا ده. مرتبطه به شخص بود یعنی خیلی من چه چم... من می دیدم چونم گرم بشه یه یعنی دیگه برام بالای منبر بین راضیه پای آوازام هست کجا چیز بدم کجا آره آره BSL میاد یه کاری میکنه به زبان ساده میاد میگه که فرض بدید من یک نرم افزاری الان دارم و این نرم افزار رو میخوام فرض کنید که منتشرش بکنم تحت اصلا یه پروانه جی پیل. ولی من نگرانی این رو دارم کمون که بسیاری نرم افزارهای آزاد در واقع با این مسئله دوچار شدن که نرم افزاری داشتن طبيعتای های اي و این چیزها باشه که خب این کار خیلی زیاد اتفاق میفته و حتی تو موارد نرم افزارهای جی پی ال هم اینا اتفاقاشون می افتته و اون این هست که من حالا شخص توسعه دهنده یا شرکتی که پشت توسعه یک نرم افزار آزاد هستم درم زحمت دارم زحمت میکشم بخیر انرژی دارم میذارم هزینه دارم میکنم که نرم افزاری توسعه بدم و کسانی هستند که میان نرمفضایی رو که من تولید میکنم رو میان به شیوهی عرضه میکنند که در واقع در رقابت با من قرار میگیرند یعنی مثلا من این که دارم تولید میکنم رو به صورت خدمت هم دارم ارائش میدم که طبیعتا در اون قسمتی که دارم به خدمت دارم ارائش میدم تأمین مالی میکنم که بتونم این و رو ادامه بدم و خب زحمت رو من میکشم بعد یکه دو تا شرکت دیگه که را من بلند میشن میان همون چیزه که من تولید کردم رو میان ارائه میدن و عملا بازار من رو میشکنن و بدونی که کمکی به خود پروژه بکنن اون جریان نقدینگی که بعد بیرفارد پروژه بشه و در خود اختلال میکنن و حالا بعضی از پروژه ها حتی پروژه بودن که MIT بودن تو سال‌های گذشته و اومدن Uh, تو مواردی که حالا بعضی دوستان میگن که پروانه AGPL کنن GPL پیل ها کپی رو اینها شکست خورده هستن خیلی جالبه که خیلی پروژه های جدید رو من میبینم که از پروانه MIT یا آپاچی پروانه که بسیار پروانه سحیل گیری هستن یعنی تغییر دادن پروانهشون رو نه به جی پیل به AGPL که یه جوری سحقیرانه ترین پروانه نرمثل آزاد هستن. در همین جهت که در واقع بگن اگر در واقع کسی پروش داره ورداش لاقل تغییری داد مجبورش منتشرش میکنه اما خب اینم چفایت نمیکنه دیگه یعنی همچنان اون چالشه باقی ببونه که زحمت من بیکشم کسی دیگه میتونه اون رو چان؟ میگن مثالش تمافرمه دقیقا این اتفاق سر تمافرم افتاده تمافرم ای ژی ڈی ڈی ڈی ڈی بعد حالا بخوام یه چند تا هارده بیسل راستون را قسم که بعضی پروژه کار داش AGPL مثلا اگه اشتباه نکنم ما تو ما اگه اشتباه نکنم یه همچین کاری کرده بود یه پروژه دیگه هم هستش که برای نه مثلا نگه پروژه دیگه هستش که مثلا در واقع برای تحلیل در باز باست کنند کنند کنند سایت هست. اگه اسمش رو میدونی بهم به بگی معلوم میشه اون دفعه اون پروژه اینطوری بود که اون دفعه AGPL که یه پروژه دیگه بود الان من حالا خاطرم BSL اسل یه یک دیگه ای کرده. BSL برای که بهتونی این چالشه را رفت بکنه اومده گفته که ما یه پروانه درست میکنیم به اسل بی... که ما توش به زبان ساده دقیقا دو تا شرط داریم عجزا چیزی میخواستی بگی؟ نه نه نه آره. میگه که ما توش دو با دو تا شرط تضمین در واقع میدیم که این کودی که من الان دارم منتشر میکنم تحت یک پروانه آزاد سازگار با جی پی ال منتشر میشه یعنی چی یعنی من الان تصور بکنی که بیام اینجوری بگم که من یه نرم افزاری دارم منتشر میکنم که الان آزاد نیست الان یعنی با پروانه مثلا جی پی ال منتشر نشد یا حتی جی, جی ولی من قول میدم که این پروانه این نرم افزار الان این که من الان دارم منتشر میکنم عادتن به صورت آزاد منتشر بشه ما این تو ایران هم داریم بعضی از این کارا از این قول‌ها دادن و هیچ اون قولشون محقق نشده این پدیده خیلی جالبیه آره حالا آزاد صدق می کنه حداقل دو تا مورد بوده در برای جواب برای دستخط چیز فارسی اوسیاری که بتونه دستخط فارسی رو درست بکنه و هیچ هیچ‌کدوم از اون موارد هیچ‌کدومشون نیومدن یعنی قول داده بودن که بیاید مشارکت بکنید و ما بعداً داده‌هاشو آزاد منتشر میکنیم. و نکردن هیچ وقت نه مشخص بود که نمیکنن این کارو چون اصلا نسبتی بوشه نه سال ده مانا بی اس میاد میگه خیلی خوب شما میای میگی که ما اینو مثلا تو پروانه اشاره میکنی که یعنی تو متن بی اسل در واقع میزنی که من این نرم افزاری که دارم منتشر میکنم در آینده تحت پروانه ایکس منتشر میشه که اون پروانه بایس سازگار با جی پی ال باشه نکته مهمش این هست و دو تا شرط داره یکیش این هستش که در واقع این اتفاق خودکار اتفاق میفته یعنی شما یک زمان رو تعیین میکنید در دو تا شرطش دیگه شما در واقع یک پروانه رو مشخص میکنی و یک زمان رو مشخص میکنی پروانه پروانه‌ای که گفتم با پروانه سازگار با جی پیل باشه و شرط دومی دو که در واقع بی ایس داره این هستش که در در واقع این اتفاق این تغییر پروانه از BSL به مثلا اون پروانه ای در زمانی که شما تعیین میکنید یا چهار سال دیگه هر کدوم که زودتر برسن اتفاق میفته این نهایتا نرم افزاری که من تحت بی منتشر میکنم نهایتا چهار سال دیگه تحت اون پرفانهی که من قولشو دادم اتوماتیک منتشر میشه خب، و توی این فاصله عملا در واقع تنها محدودیتی که اینجا میذاره بی این هستش که شما تمام آزادی هایی که یک پروژه نرم افزار پر همون پروانه ای که در این صحبت به شما میده رو داری غیر از یه چیز و اون اینکه رقیب من نمیتونی بشی توی اون فاصله حد اکثر چهار ساله یعنی یا چهار ساله یا زمانی که مثلا من خودم گفتم که نه من چهار سال میگم دو سال نمیتونم بگم 6 سال 6 سال بگم چهار سال کمتره اتوماتیک میشه چهار سال. و در واقع چیزی که, میگه که میگه شما توی این فاصله زمانی از همه ی حقوق یعنی نرم افزار رو طبیعتا میتونی استفاده بکنی خود منبعش حتما در دست رسستش میتونی ببینی می‌تونی تغییرش بدی میتونی استفادهش بکنی حتی می‌تونی استفاده تجاری بکنی ازش ولی استفاده نباید در رقابت, با... در رقابت با من باشه و من این رو با علمه به این که خود بی اس ال در لحظه ای که در واقع نرم افزاری داره تحتش منتشر میشه نرمفضل آزاد نیست اما من به نظرم میرسه که حتی بنیاد نرمافزار آزاد اگر یه روزی بخواد اظهار نظری بکنه در مورد این میتونه با گفتن این جمله که آره در این حالی که این نیست اما چون تعارضی با چیز نداره و در واقع چیز در این مسیر در واقع تورید آزاد میتونه مفید باشه پروانه هستش که از ما این محدیتش اشکالی به نظرم میرسه که گونیده نرم رازن اینو بگه چون این همچی صحبتی رو در واضی یه پروانه های دیگری هم داره مثلا ما یه پروانه بسیار مرسومی که داریم تو دنیای فونت فونت آزاد پروانه اوف, اوف اوفل هست اگر اجتبال اگرم اوپن فونت لایسنس و این پروانه شرط عجیبی داره و اون این هستی که شما فونت رو نمیتونی خود فونت رو. ولی میتونی این رو با یک نرمحصاری که داری میفروشی بفروشش بنیر نرمحصار آزاد اومده چیز که خب این به طور آشکار با تعریف نرمحصار آزاد در تعارض با یکی از درخواه نرم نرمحصار آزاد که شما میتونی در واقع این رو درخت در دیگران قرار بدی ولی نکته که داره این هستش که بنیر نرمحصار آزاد میگه که چون این شرطی که گذاشته به راحتی در واقع فروش اون فوند در کنار یک نرم افزار بسیار ساده یک پرینت هلو ورد میتونه در واقع فروخته بشه بنابراین این محدودیتی که اینجا گذاشته شده محدودیتی در واقع تعاروزی با اون فلسفه نرم افزار آزاد نداره و بنابراین ما این پروانه رو پروانه نرم افزار آزاد به حساب میاریم. از این جهت ما فکر میکنم بی ایس در واقع تعاروزی نداره چون تمام الان مثلا فرض مید که یک مثلا اه اه نکس کلاود مثلا بسید دقیقه یک پروژه نرم افصال آزادی هستش که بر فرض چون الان تحت AGPL هست فرض میدیم بشه BSL ما میتونیم در واقع بیان تمام آزادی هایی که اون پروانه مثلا فرضا تعاون داده باشن که ما اینو AGPLش ای میکنیم ما همه اونها میتونه بحرمند باشم غیر از اینکه من خود نکس کلاود در تعاروز بگم بگیم بلا آزادی کس بکنیم تا خب ما چه چیز دیگه ای ما همین رو می ما می بدونیم که با اون در تعارض قرار بگیریم بدونیم که بخوایم نون اون رو آجور بکنیم ما کارمون رو انجام بدیم مشتری های ای رو اصلا می که اصلا در حرزه در واقع با سالیاپی اونها نیستن ها و از این جهت من به نظر کار بسیار جالب و عملگرایانه ای میاد که در عین که وفادار هست به نرم افزار و آزاد و دیگه اینجا چیزی نیست که شرکت هم اگه ورشکست بشه اصلا نیست و نابود بشه خود پروانه به طور اتوماتیک داره میگه که این تبدیل صورت میگیره و نیازی نیست که کسی بیا تظبینی چیزی بده. تظمینه در واقع به تو خود پروانه لحاظ شده. من فکر می‌کنم که یک چیز جالبی هستش که میشه در واقع لحاظش که اگه کسی توی ایران بخواد پروژه در آزادی رو منتشر میکنه من حته فکرام میکنه فقط توفرزن. فکر میکنم که حقیقتی اگه اشتباه نکنم حقیقتی برای یکی از مدل‌های شبسنویکی که داش منتشر میکرد. یا حالا یه حالی نرم افزاری که داشت روش کار میکرد اون رو با یک پروانه‌ای که الهام گرفته بود از بی اس ال متشکل یعنی با یه تغییراتی از بی اس ال یک درست کرد تغییره اگه اشتباه نکنم چیزام بود مثلا مانی هم یعنی چیزی مرتبط با پروژه مانی آره مانی لایسنس مانی لایسنس আরে مجرد مانی আরে اونجا الهام گرفته از همین مدلی بود که بی اس شده. و به نظرم کار جالبیه. به نظرم کاریه که هیچ تعارضی با اون اصول اساسی در وصل آزاد و آزادی در وصل نداره و میتونه در واقع به شکل موثری کمک بکنه که اون جرگیار نقدینگی که وارد پروژه باید بشه، بتونه وارد پروژه بشه. آره، بباشه دیگه طوله نشه. ممنون خیلی خوب بود خیلی مفصل و جامع هم یعنی تمام اون که من دوست داشتم بشه اشاره بشه و شما, شما, شما, شما کردی <تصفح> دمت گرم فقط واجبه بی من خیلی دوست دارم سفر همو شیر کنم به یه چیز جالبی و نشونه شما بده و بقیه دوستانشون چون این جلسه زفت میشه و ممکنه بعدن هم دیگران دیگوارین جلسه رو ببینن چجوری؟ آها خب فایفاکس من رو هر وقت میدیدید بگید ما الان بیگ بول شما شبار داریم خب خوبه من اینجا open open to food. open to پروژه است که بلدیم که ترافرم مجرودش عوض شد از چیز از, از ایژی به بی ای یا BSL، open to food منتشر شد و من دوست کنم به یک قسمت تو این به این کنم our concern the BUSA license is a poison pill for بعد حالا آ... اومده داخل این چیزی که توضیح داده آ... بکنم اینجا هست در اشتباه نکنم میاد میگه که آقا شما از کجا میخواهید آها اینجاست اینجاست هنشترک uh, terms are vague now every company vendor and developer using has to wonder whether what they are could be کامپیتیتیو هاشی خب میده این مسئله که توی بیوی هست و میگه آقا شما به تجاری من نشین، این چیزه این خیلی ویگه خیلی گلد و شاده خیلی حالا نمیدن به چجوری ته مبهم مبهمه خیلی مبهمه و جاده به که اپن توفور رو لینودس فاندیشن فاند میکنه و و دست اولا تراثورم آزاده میخواستم اون طرف یعنی خب خیلی صحبتی که شد در چیز در... در... در... در... میخواستم یه ذره چیز رو هم بگم یه ذره اون طرف رو هم بگم که یه دم فرشش میدن و چجوری هم فرشش میدن همین هم مشعله هم دا مسئله خلاق قانونی رو کردی که خیلی از ممنونم هم دا مسئله لایسنس ها کردی که خیلی خوب بود یعنی خیلی جامع و کامل بود من واقعا دوست داشتم این شو. من هم در تکمیل صحبت دوستام هم بگم که آقا ما چیز داریم؟ ما یه قانونی داریم در ایران حقوق مؤلفین و مصنفین که یه جوری ای کوپیوائیت ایرانه من خبردار شدم که ما حقوق مؤلفین و مسننفین دیجیتال هم داره این یه دونه نسخی دیجیتال هم داره. که شرکت نمفضوی این مثلا اینایی که جالبه. ای این شرکت که مثلا گیردو و چین رو فلان رو به همه اینایی که پچه نمفضوی تولید می خیلی هم پرو استفاده بین ویندوزی ها. مثلا MRT و چین و گیردو و با این کمینت هایه الان دیده کسی قید بدونم از استفاده استفاد ولی اون زمانی که اینترنت ها خیلی کند بود خیلی استفاده داشت اینا من خودم یکی از مشتریهای گردی بودم اینها به طرز خیلی جالبی اینجوریاند که پیگیری کنن اتفاقا یعنی این بحث حقوق مولفین مصنفین دیجیتال ب اینا من پیگیری میکنن. و هست قانونه هست و وجود داره این هم در تکمیل صحبت شما و استفاده میشه ازش فقط ما خبر نداریم که استفاده میشه این نکته جالبیه به ماها نمیگن مثل همون صحبتی که کردی شکایت نکنیم که از همون نکنن نتونن سربسته ندهش میدارن نزدیه رو سعی میتونن بین خودشون حل کنن نشه میبقید نرکه قضایی ولی دیرو عمومیش نمیتونن اه... شایق هم هستش که با میکروف اومده بالاا اگه دوستش که صحبتی بکنه و خوشحال میشیم که صحبتش رو بشننووییم اگرم نه که من فکر میکن ما الان هفت و سه دقیقه از ضبط گذشته اگر بتونیم تا 80 دقیقه اگر نکته خیلی مهم نداشته باشیم تا 80 دقیقه جلسه رو جمعش بکنیم خیلی عالییمش نهایتا دیگه 90 دقیقه قرار رو بذاریم روی د نقطه پایانیه من هستم در خدمت بفرمایید من دیره مطلبی ندارمم. اگه شما مطلبی نداریم میتونیم کم کم ختم جلسه با اعلام کنیم از اوستان مهدی شقایق عزیزان حاضر در جلسه. خب سلام. من کسان تشکر کنم. خیلی برای من موضوع جدیدی روز زیاد یک قسمت از مغزم و جدیدم فعال کرد. خب. تشکر میکنم مرسی خیلی عالی بود بقید من بی رو متوجه نشدم دقیقای چیه یه چیز دیگر میگفتیم که خب فکر میکنم با یه سرچ اوکی میشه مرسی ازتون ایس ایس پی ایس آره آره این ها مجموزهای نرمفضاب هستن شما وقتی نرمفضاب رو حالا منتشر میکنی یعنی یکیسی که نرمفضاب رو منتشر میکنه باید بگه که این نرمافزار رو شما برای چه کارهایی اجازه داری استفاده کنی برای چه کارهایی اجازه نداری استفاده کنی آیا اجازه رو کوپیش کنی آیا اجازه نداری کوپیش کنی و چیزهای این شکلی به این میده مجوز خب مجوز استفاده حقوقی که توسه دهنه افزار برنو این کسی تو کوکیوét افزار رو داره به مایه کاربر اعطاب آزاد ما میاییم به این مزید رو دور می زنیم. یعنی копی میاد ما محدود میکنه. ما میایم از محدودیت و копی علیه خود رو استفاده میکنیم. میدیم که копی وایت میدن که تا حر ندبینه نمخزاب کپی کنی. ما میدیم نمخزاب رو هم داری کپی کنیم به شرطی که فلان. یعنی عملا میایم از копی وایت استفاده میکنیم علیه خود رو کپی این برای همین حالا ال... تلمه یک کو اینجا اومده کپی رایت حق کپی رایت به راست هم میده اومدن باش بازی, کلمه بازی کردن کپی لفت و ساختن ازش. یه طور خیلی مختصف مجوز چیه و وقتی میدیم نه مخصول و آزاد مجووز انجام آزاد منجومون چیه مصطفی لطف قطع عمومی توی اه... گفت دوی عمومی نوشت اینکه SSPL و بی حالا بیو یا بی FL رو و ما خطفه هستم درسته خیلی مرمونم ازتون میرسی خواهرش می کنم خیلی مالی ام... کلان بحث نرم افصول آزاد و کسب و کار یه چیزیه که هر چقدر دنباش صحبت بشه کمه و من خیلی دوست دارم که ما بتونیم یواشواش به سمتی بریم که صحبت بتونیم در واقع مقتنی باشه در اشتراک گذاری تجربیات در زمین در این زمینه حقیقیش چی و... بتونیم بیاد صحبت کنه. آره دیگه حالا مجبورش نیستیم شیب کنیم آره من من اونقدری که در توانم بوده کردم ولی آره ا uh, ا هم نداره آه, یعنی مخالفت هم نداره میشه یه دفعه آره آره دو تا چهار تایی که نه، دو تا چهار تایی اون ابر و ماه و خورشید بعد بیان دست به دست هم بدن که اتفاقی بیفته اون اون جور جور میشه آره ما اگر چه بشه که ما بتونیم چون آره، من خیلی واقعا خودم خیلی خستم از اینکه ما تو خیلی از رویدادهای گذشته نرم افزار آزادمون که در اقتصاد نرم افزار و آزاد و اینها صحبت میکردیم همش مثال مثال چیز بود که بله نه maksud واسه خوشش این که کرد. نمی میتونه رتد میگم آقا رتد یه دونست تو دو دنیا نه اصلا کانونی هم رتد نیست. رتد همون یه دونست و خب این مثال به دردمون نمیخوره یعنی شما با یه مثال نقض آره میتونید بگید که به لحاظ منطقی پس نمیتونید بگیم در مفصل قواصاد با کسب و کار و درآمد چیز آره اوکی ولی خب سوال احتمالاً اینه کسی که مبدا پای این هستن خب من چخ خب ما چیکار میتونیم بکنیم حالا من میخوام یه نرم افزار آزادی توسعه بدم یعنی من دوست دارم یک کسب و مثلا راه بندازم که مثلا با اون مسائلی که حالا ما نرم افزار آزادی رو به عنوان مسئله اخلاقی توسعه نرم افزار نرم به حساب مییاریم میخوام نرم رعایت بکنم میخوام نرم افزارم به صورت آزاد منتشرش بکنم من چیکار بکنم که کسب و کارم هم, هم بتونم ادامه بدم که اینا بتونن در واقع با هم دیگه یک بدو رسونی خوبی داشته باشن که کار جلو بره و خب من ارائه ندیدم تو این سال توی ایران تو این سال که در تمام سال توی ایران که به این پرداخته باشه و خب فکر میکنم یه بخش از چیزشم هست اصلا کسی کاری نکرده و حتی هستن کسایی که کارهایی در این زمینه کردن ولی خب اونها هم خیلی اهل صحبت کردن و اینها نیستن گوشه برا یه گوشه برای خوشون یک کاری دارن انجام میدن و خوشحالن اونها. و من خیلی خوشحال میشم که این تیپ در واقع جلسات جرقه هایی رو بزنه و در واقع افراد بیان چه بسا مثال خوبی رو کسی رفته باشه توی زمانی بررسی کرده باشه که فلان پروژه نکس کلاود الان مثلا اشری کردی که میاد در واقع کسی که خودش اون کلاود رو درست کرده میاد در خود شرکت خودش میاد بیرون که نیکست کلاود رو درست بکنه که به وجهی که دوتا پروانه تجاری و مثلا آزاد داشته باشه کله پروانه آزاد سخت ایران هم اونم هم به شکلی داشته باشه که هر کسی که تو پروژه با شرکت میکنه تو پروژه اصلا امضا میکنه که من این کودی که دادم مال منه برعکس کودی که خیلی جاهایی که اگه اشتباه نکنم میگن چی میگن دیوپلر لایسنس اگریمنت درست میگم؟ <تصال> به در واقع یه اونجا در واقع بنو اگه اشتباه نکنم امضا میکنم میگن یعنی که آقا همه حقوقی که من در این چیز در, در این خودی که مشارکت کردم هستش رو من واگذار میکنم به این شرکتی که پشت پروژه هست که در واقع یعنی که پس فردا روزی اون شرکت اگه تصمیمی بخواد بگیره که مثلا پروانه رو تغییر بده یا را هر کاری بخواد بکنه اون شرکت دستش بازی که هر کاری بکنه ولی از شما که مشارکت رو پروژه میکنید در واقع میگه که باید یک سندی رو امضا بکنی که بگی آقا این تغییرات که من دادم مال خودمه یعنی مال خودمه یعنی به این معنی که فرده نکس کلاد بگی مال منه یعنی اینجوری یعنی یه کاری کرده که نکس کلاد اصلا امپوار یعنی اومده خودش رو توی تنگنایی قرار داده که میگه آقا این پروژه‌ی آزاده و آزاد میمونه قابل تغییر دیگه نیست خب بعد سوال این پیش میاد خب چه داره خوب داره خوبم داره میاد جلو انقدری که سال گذشته میلادی پنجاه درصد نیروی نیروی که به کار گرفته بود افزایش داد و این عادت خیلی بزرگیه یفیه شرکت در درصد افزایش داد که در به اندازه آره دیگه 50 درصد استیلاپ کرد دیگه یعنی یعنی استیلاپ کرد آره یعنی قشنگ این شرکته توی به بازاری در واقع ورودی فضا شده که یه لفه نیاز... انقدر نیاز به نیروی جدید داره و خب این یعنی اتفاق خیلی بزرگیه و خاطر خب میبینیم کسی که دنبال میکنه میبینیم که نکسترات چقدر توی در تونتون داره نسخه های جدید داره میده امکانات جدید داره میاد که بیشترم حالا زیر ساختی هستند حالا تا چیز دیگه و این خیلی فوق العاده فوق العاده ای خب مثلا حالا اینا از این جهت داشتن میگفتن که مثلا کسی ممکنه که برای خودش رفته باشه وقتی گذاشته باشه توی یک پروژه نه نفره و تا رو این این شرکت با این روش داره در واقع تامین رو انجام میده و خب چه بحث ما میتونیم از اینها بیام استفاده بکنیم و توی ایران هم به شکلی در واقع این کار رو جلو مره. در حال این جور ارائه رو میگم من خیلی ازشون استقبال میکنم و امیدوارم یه روزی هم خودم در واقع دانش رو داشته باشم که بیام اون رو به اشتراک بذارم و به نظر من دایی ولی سخت میجیبی نه خود مثلاش ایناست که من خودم افزار آزادی رو توسعه نردم و ازش ن نر... کسب درآمد کرده باشم که بخوام بیام از این جهتش دارم میگم که... ولی حداقل من اطلاع دارم که شما توسعه دهنده نه افزار آزادی بودی که از کهدلش داشته دو کسب چسب می آره اون, اون به عنوان یه مدل چیز هست آره یعنی میشه اون مدل رو گفت یعنی من شرکتی که توش کار می آره ما یه سری در واقع بسته های زبان روبی رو داشتیم. که ما اونها رو توسعه میدادیم و مشتریای بخش بزرگی از مشتریامون کسانی بودن که ویب سایت هاشون از این ها استفاده میکردن و خب اونا ترجیح میدادن که به جای یک نیروی تمام وقت رو خودشون استخدام بکنن که مسلط بشه به همه این چیزا، بر کارو بدن دست ما, ما انجام بدیم براتون. اون هم راضی بودن، ما هم راضی بودیم. از قبلش هم خلاص ما هم یه خورد. <تصفح> کار برزن. کار خیلی این مدل و کسب و کاری که ما تو اون شرکت داشتیم آره کار جالب بود که فکر فکرم خیلی شرکت هم هستن که به همین شرکت در واقع چیز روی اون نرمخصور آره آزاده آره. که آره, من... این... آره. آره من حالا توی این ارائه دیستر تمرکزم بوده این بود که مثال از شرکت هایی که دقیقا محصول اصلا نقطه ارزششون عرضششون نرمخصور آزاده بزنم وگرنه هم این مورد هست که رفتی هم این هست که مثلا میشه چیز کرد. میشه اصلا دوال لایسنس کرد. خیلی نمه دوال لایسنس الان دیگه. مثلا گیت خودش دوال لایسنسه. حالا درسته که این سیاست رو گذاشته که هر ای که منتشر شد از گیت انترپرایز حتما تا دو نسخه بعد اون ویژگی هایی که من معرفی کردم تو گیت لاب میاد. درسته که <تصفيق> این اینفوو کرده ولی خب بلاخره باز اونم درمصب آزاد نیست دوال لایسنسه یا مثلا کیوت هم دوال لایسنسه داره پولش از نرم افزار قوی آزاد در نمیاد یا حتی زن خود زن سرور دوال لایسنسه داره پولش رو از لایسنس قوی آزاد در نمییاره ولی حالا تجربه می‌کنمش اونم درمصب آزاد من تعمدن دوال لایسنس رو رفتم تو این راه با اینکه مدل خیلی پر استفاده ای هم هست من می خوام تمرکزم روی خود نرم افزار آزاد باشه. آره. نه، نکته‌ای میگی اصلا الان هم اشنایی کردی نشون میده که اصلا خود این بحث چقدر جنبه‌های مختلف داره. یعنی ما نمیتونیم یه گزارش خیلی کلی بگیم. الان مثلا هم بحث دوال لایسنس یه جاهای مثال‌های خوبی میشه ازش آورد و یه جایی مثال‌های بد میشه ازش آورد. که چه جوری مثلا اون, مثل ما... اون کلا یه مثال خیلی بد که باعث بشه خود کسی که پروژه درست کرده از پروژه بیاد بیرون و براسه اون نسخه آزادش بگیره و اونو توسعه بده اون میخواهم یه مثال اونطوری هست از اون طرفش تجربه که مثلا توی گیتلب هست یه یعنی در توی اون کلاد اتفاقی که افتاده بود تمام بود تمام که تو نسخه تجاری بودش تو همونجا گیر افتاده گیر افتاده بودن و عملاً نسخه آزاد یه نسخه علیل باقی مونده بود ولی گیتلب عملاً با این در واقع به سیاستی که داره اینه که اون نسخه در واقع اون در واقع تجاری در اون تجاری گذاشتنش به لحاظه همین هستش که بتونه این تامین مالیه رو تضمین بکنه ولی در نهایت این ویژگیه بالاخره دیریازود میاد تو نسخه در واقع آزادش منتشر میشه یعنی میخواب حتی یعنی فقط ما میتونیم یه ارائه مستقل داشته باشیم در که چه سیاست مختلفی رو پروژه مختلف با در واقع با دوال لایسنسینگ با داشتن دو پروانه انتشار به کار مثلا و الانم خیلی من خیلی میبینم پروژه های مختلفی مثلا یه پروژه که خودتم باهاش کمی سر کله هم زدی همین کل دات کام مثلا مهم. خیلی پروژه اینجوری داریم که یه بخش عمدهیش در واقع کلا نرم افزار آزاده و نه فقط نرم افزار آزاد تحت ای جی پیله و یه پوشه دارن مثلا که اون پوشه پوشه در واقع تجاریش است که حتی اونم منتشر شده فقط بحث نیست که شما از این اگر استفاده میکنید باید پروانه تجاری داشته باشید. من زیاد دیدم پروژه های اینجوری و حالا مثلا میگم میگم یه نفر میتونه فقط بیاد یه موضوع در واقع بحث دوال لایسنسینگ رو انتخاب بکنه و بره مثلا پنج مدل مختلف از شیوه به کارگیری این رو به کار بیاره و بگه که تو تاریخچه اینا هر کدومشون چه نقاط و مثبت و منفی بوده خودم که تو این زمینه مشالا حرف زیاد داری. این فقط یه مدلش حالا ما میتونیم مودلهای دیگه داشته باشیم از تجربه شرکت‌های مختلف داشتن حال ممنون، من به نظرم دیگه اگر نکته خیلی مهمی نداریم دیگه 86 دیگه غم شد آره جمع کنیم آره بس ها جمع بکنیم. من, من تشکر می‌کنم. من نکته دیگه ندارم من خداحافظه میکنم، شما هم که به سلاح دیده خودتون منم ممنونم، خیلی خوب بود و خوشحالم که بالاخره بعد از سوالها به قول خودت میجی کسی میگفتیم نرم افضا آزاد همه میگفتن رد هست دیگه برقی که حالا مثلا ریولوشان قراص را دیده بودن یه ولی نوکس هم میگفتن که مرحوم ولی نوکسی هم وجود داشت یا مثلا مفهوم مثلا چه میدونم 3726 یا اصلا 3726 دو الان دوباره زنده شده یا مثلا مفهوم سال سیستم سیستمزی هم وجود داشت ولی خب اونها مرحوم شدن یه چیزی بگو که الان زنده باشه و خوشحال yani هم که بلعکبه این امایه دروزه یعنی فکر کنم من و تو فقط با هم یه سه سالی کلنجار رفتیم تو این امایه بلعکبه امایه شو یاره <تصال> حد سه سال یاره حد سه سال دمت هم جرم دم دونا جرم و من منم خدافظی می تشکر تشکر شبتون بخیر باشه و پیش هم سال نوتون مبارک شما مبارک باشه خداحافظ. خدا خدا مگه